اللهم صل على فاطمت و ابیها و بعلیها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمك بسم الله الرحمن الرحيم مباعثی تب المحسومین مباعثی تب المحسومین 162 الروايات قال النبی صلى الله عليه و وسلم ما انزل الله من دائم الا انزل له دواءا خداوند متعال هیچ دردی و بیماری را نازل نکرده مگر اینکه برای اون درد و بیماری از داروخانه طبیعت دوا و داروی قرار داده بشر باید کشف کنه تحقیق کنه پژوهش کنه اون داروی طبیعی رو از دامن طبیعت به دست بیاره مومنا این فراز از روایت در سیدی جامال احادیس مرکز مطالعات کامپیوتری قم نور هفت تا سند داره همین قسمت که خوندم تو بعضی احادیث مثلا حدیث ابن مسعود یه اضافه هم دنبالش داره علمه من علمه و جهله من جهله علم و دانش داره هر کسی که علم و دانش داره به داروی خاص برای بیماری خاص و هر کسی هم که نسبت به او آگاهی نداره یا اینکه علم داره اما بیعقلی پیشه میکنه و از داروی طبیعی در دامن طبیعت استفاده نمیکنه رو میاره به داروهای دست بشر مخصوصا به نوع شیمی درمانی مقصر خودشه بدن تو طبیعت خدا از طبیعت خلقش کرده بدنش روانش و مسائل طبیعی سازگارتره حالا علم داره به علمش عمل نمیکنه یعنی بی پیشه پیش می کنه جاهلانه عمل میکنه از داروی طبیعی در بیماری خاص استفاده نمیکنه اینم بعضی افراد همچون ابن مسعود اضافه بر این روایت اواردن که تو سیدی نور سوانیم فقط یک سند داشت اونم بهار تبع بیروتی جدید جلد پنجا و صفحه هفتاد دکتر لبی بیفون یک سند دیگه اوارده اونم العقد الفرید جلد هفت صفحه دویست و شست و چهار امام رضا علیه السلام به این مضمون اول روایت که خوندم در اول رساله ذهبیه طب الرضا مطالب ارزنده آورده از این رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام در مخزن کتابخانه آستان قدس رضوی هفت نسخه خطی از رساله ذهبیه امام رضا داریم ترجمه های مختلفی هم شده تعلیقات مختلفی شده مثلا از منشورات آیتالله از ما حکیم در نجف اشرف مهدی نجف که بر نگارش کرد در ایران دانشمند محترم صادقی مطالب داره دکترای محترم دیگه مثل دکتر محمد دریایی مطالبی داره از علمای قدیم حدود 120 سال قبل در شهر مقدس قوم هم مرحوم مامقانی که پسرش آنان نزدیک 90 سالشه کتاب مرئات الکمال تو مرئات الکمال رساله ذهبیه امام رضا رو قشنگ آورده حالا نسخه های مختلف اول رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام به همین مضمون مطلب داره میگه خدا بدن آدمی جسد آدمی و همچنین عبد را سه نسخه داریم به سلاح مبتلا نمیکنه به بلایی مگر اینکه داروی خاصی براش قرار داده حالا بشر باید تحقیق کنه داروی خاص رو برای ابتلا و درمان جسدش بدنش پیدا کنه پس شما بودیم مؤمنا این مال این مطلب حالا برای اینکه تصور خوب کنین مؤمنا یه مثال کاربردی اینجا یادداشت کردم اوستون بگم مثلا یکی از اعضا و اندام حیاتی بدن چیه؟ کلیه ها دو جای بدن سریع سرما میخوره یکی سینوس های فوقانی یکی دوتا کلیه ها که پشت آخرین دنده های سینه از طرف پشت بین مهره و بین آخرین دنده های سینه از داخل بدن این جای دوتا مه... کلیه های بدن لذا یکی از مستحبات اسلام چیه؟ اسلام ولایه اینه که از حمام یا استخ که میاد سرشو ببنده دوم هنگام خواب و مانند اینها کمرش رو ببنده تا این دو قسمت سریع سرما نخورد. دوم اینکه اگر شخص تبه کلیه ندارد اما شن یا سنگ کلیه داره باز داروهای خاصی از دامن طبیعت میتونی استفاده کنی مثلا کاکل زرت دم گیلاس خار جوشانده یا دم کرده و یا عرق اینها داروهای قوی ضد شن و سنگ کلیه یا از داروسازی حکیم مال تبریزه تیزن مخلصه میتونی استفاده کنی رقیقش رنگش مثل آب سفیده یه استکان تو 24 ساعت غلظتش بالا باشه رنگش زرد نصف استکان در 24 ساعت میتونی استفاده کنی اگر کسی مثلا کلیه کم کمکاره و بخوایم مدر استفاده کنیم مثل کاهو مثل لیمو شیرین مثل خربوزه بعد از غذا اینا همه چیان مؤمنا مدرن یک بار دیگه مؤمنا شخصی هست که ادرارش چربه وقتی میره دستشویی سنگ توالت چربانن میشه حتما تو جیره غذاییش به همراه نهار و شامش کاهو بدون سس کاهو بدون سس بخوره و همچنین مقدار آب و آبجوش بلرمه کافی به بدنش برسونه تا ادرار چربش درمان بشه اگر کسی نسوج بافتی کلیه اگر کسی نسوج بافتی کلیش آب آورده مثلا کیست کلیه دارد اینجا حتما تو جیره غذاییش هم گل استخدوست صبحا هم افتیمون مغرب هم شب شبها به همراه شام یا قبل از خواب کرفس خام کرفس خام بخوره آب آوردگی کلیش و کیست کلیش خوب میشه اگر کسی مثلا سرفه خشک دارد ولی مزمن نیست چند روز یکی دو هفته سرفه خشک دارد در درزم میخواد کلیه های خود را شستشو دهد کلیه هم شستشو بده اینجا میوه خورمالو میوه خرمالو رسیده یکی وسط روز میخوره یکی هم اصرانه میخوره اگر کسی کلیه از کار افتاد تو پزشکی جدید بحث اورولوژی اگر کسی کلیهش از کار افتاد و مجاری ادراری و ما علق به ما حالا چیکار کنیم؟ از کار افتادگی کلیه رو درمان کنیم پنج داروی طبیعی یک خوردن سیر افهم واسه سناخته خوردن سیر دوم خوردن کاسنی هفت برگ کاسنی تو 24 ساعت خیلی فواید داره زده سهره، زده لممه اسفرم های شوهر اسپرم اسفرم شوهر رو زیاد میکنه تخدان زن رو فعال میکنه طول عمر تخمکش رو بالا میبره ذریب لقاح تخمک به اسفرم شوهر رو بالا میبره حالا مبایسته خودم یکی از داروهای طبیعی در بکار انداختن کلیه یکی از کار افتاده سوم استناج چهارم میوه های جالیزی مثل بادمجان. جان پنجام شنگ گیاه شنگ این تو تبه مکمله فقیش که همه تو روایات خودمونه درست چون مامره؟ پس اگر کلیه از کار افتاد تو پزشکی جدید میگه یکی دو جلسه برو دیالیست میگه یکی دو جلسه برو دیالیست نزیر کسی که شک قلبی یکی دو تا بهش میدن دوباره قلبش را بیافته راژیو قلبش مطلوب باش اینجا میگن یکی دو جلسه برو دیالیز تا کلیات به کار بیافت کلیه هایی که اکار افتاده ولی جدار داخلی کلیه قسمت گلومورول های هشلوب کلیه نپوسیده فقط اکار افتاده حالا با این پنج تایی که خدمتتون گفتم با این میتونید کلیه طرف راوندازی بدون این که یکی دو بار برید دیالیز این قابل از داخل و خواهد کشفه اینا مثال های واقعی مؤمن براتون برای تون فقط به خاطر چی؟ این فرمایش نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که رسول رحمت رحمتن للعالمین فبیب دوارون به طب حالا فرمود به این مضمونم که امام رضا رعوف علیه سلام فرموده ما انزل الله من مندائن الا انزل له دوائن یکم مثال واقعی برای جسمتون زنم گاهی مثال ها مربوط به روانه به روح، به نور آدمی، اجزای دیگه شه یه دو سه کلمه خدمتون بگم مثلا در بهار علامه مجلسی جلد هفتاد و چهار صفحه 147 حدیث پنجاه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم فرمودن ما نهیتو عن شیء بعد عبادت الاوثانه ما نهیتو عن ملاحات الرجال ملاحات بحجینه ما نهیتو عن ملاحات الرجال پیغمبر اکرم فرمود بعد از نهی شدنه از عبادت بطه از هیچ چیز به اندازه کشمکش کردن با مردم نهی این اینم قابل عرض همه افراد در داخل خاش کشور که وحدت پیرامون سنت رسول الله و ولایت حقی رسول الله و امیر المؤمنین و بقیه معصومین داشته باشم، با هم نزا و درگیری مخاصمه و جدال نداشته باشم هر ستاش حرامه مخاصمه، منازعه و جدال هر ستاش حرامه پیغمبر رحمت که رحمتا للعالمین فرموده میگه خدای متعال بعد از اینکه منو نهی کرد از پرستش بدهای گوناگون به هیچ چیزی بیشتر از های داخلی منطقه جهانی بیشتر منو نهای نکرد یعنی مخاصمه منازعه و جدال پس همه افراد بشر هر کسی که دوست دارد انسانیت حفظ بشود همه فرق مسلمین هر کسی که دوست دارد اسلامیت حفظ شود همه فرق شیعه و محبین به اهل بیت عصمت و طهارت هر کسی که دوست دارد ایمانیت حفظ شود و ذریب ایمنی فرد و اجتماع از حیث حفظ اموال، حفظ نوامیس، حفظ جانها و حفظ نسلهای بشری به نوع سعی حفظ شود این فرمایش ارزشمند و گوهربار رسول الله رو بشنبه بناش و عمل بر طبق وظیفه بگذار روایت بعدی مؤمنان از امیر المؤمنین علی علیه السلام میگه اگر بعضی از افراد بشر مثلا فرض کن این یک فرق باشه اگر بعضی از افراد بشر بخشی از عمرشون گذشت اما عمرشو تباه کرده زایع کرده حالا به خودش میاد یا یه موعظه خوبی از کسی میشنره بناشه عمل میذاره میگه حالا بقیه عمرتو درست عمل کن و خودت رو تباه نکن امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: لتعتبرت بما اضعت من ماضي عمرك لحفظت ما بقی اگر از عمر گذشته خودت که تلف کرده ای عبرت بگیری ما از عمر خود رو درست به کار میبری نمیگیذاری هم تو آخر عام آدم ضایع بشه بازم فرمایشات گوهربار امیرالمؤمنین المومنین علی علیه السلام قرار الحکم آمدی صفحه 36 اناسو من خوف الظل متعجل الظل اناسو من خوف الظل متعجل الظل مردم از ترس زلت ظاهری خودشون سریعتر به سوی زلت میشه تابم چه بدبختی دیدی ذلیل بودن و یک عمل کرده ناقصه یک رفتار منفیه یا اخلاق است آدم تابع و مطیع نفس اماره باشه زلیل میشه آدم مطیع و تابع قرب و شرق درون یا غرب و شرق بیرون باشه غرب و شرق درون نفس اماره و حدیث نفسه غرب و شرق و بیرون هر کسی تو هر مختصات جغرافیایی طبیعی و سیاسی که است از غیر حکم خدا اقاعت و تبعیت کنه از مذهب حقیقی که خدا ازو راضیه که اسلام ولاییه از غیر او تبعیت کنه به ذلت پایدار رسیده و عجله کرده در کسب ذلت چون در مقابل نفس اماره کم آورده به دست خودش خودش رو آلت دست دشمنان کرده این یه مثال زرم خب درمانش چیه اینا؟ سه تا مثال خب درمانش چیه؟ مثلا اولی حاجقا نمیخوام زلیل باشم نمیخوای زلیل باشی؟ پس باید مؤمن بلفل باشی. و ولایت حقی امیر المؤمنین و یازده معصوم رو دارا باشی. اعتقاد به ولایت حق عمل بر طبق فرامین ولایت حق. همیشه عزیزی ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنین. این یکی دیگه حاجا نمیخوام خودم رو زایع و تباه کنم جامعه خانواده و یا جامعه منطقه و جهان و کشوری رو به تباهی بکشانم خب نمیخوای از فرصت های که برات فراهم میشه حسن استفاده کن این تفاوت نسبت به فرصت های طلاعی زندگیت نباش در ناهنجاری در رفتار منفی در دوست ناباب در شبنشینی مبتزل بکار نبر در حرام خاری و کسب درآمد حرام حرام بکار نبر در لحویات لقویات بکار نبر این شد درمان ضلت بالفل درمان زایع شدن عام حالا عمرت قشنگ حسن استفاده میکنی بازده و راندمانت مفید میشه زریع به بهروری سعی از و اعضای بدن بالا میخوای مال اولی مؤمن میخوای میخوایی بودفرست نباشی باقی نمانی به همه مراتب شرک جلی و خفی و اخفا میخوای مؤمن تو دو همزنی که دشمن بین فرق مسلمین ایجاد میکنن تو آلت اجرایی دست استعمار نباشی؟ نخود آتش فتنه های آخر زمان نباشی بله بله به این فرمایش رسول الله عمل کن اونی که منهی خداست اونی که منهی رسول رحمته اون منهی رو در کل عمرت به جا چون منهی آن اگر به جا بیاری فعل حرام بیانه آدم میشه فاسق بالفعل دیگه عبدالله نیست عبدالله هم باقی نمونده عبد شیطان عذاب دارد چه در دنیا چه در آخرت چه در هر دو این روایت رو از سه جهت و سه شما توضیح دادم جهت جسمی جهت روانی جهت روحی روایت بعدی مؤمنا عن النبی صلی الله علیه و آله لا تكره اربعه فإنها لاربعه از چهار چیز بدتون نیاد چون این چهار چیز زمینه میشه برای اینکه به چهار چیز بدتر گرفتار نشید لا تکره زکامه فا اینه من الجزامه ولا تکره دمامیله فا اینه من البرص ولا تکره رمده فَإِنَّهُ أَمَانٌ مِنَ الْعَمَى وَلَا تَكْرَهُ السعال فَإِنَّهُ أَمَانٌ من الفالج یکی از علمای صالحیه حضرت آیت الله شیخ عباس تبریزیان در کتاب دراستان فی طب الرسول المصطفا جلد یک بحث الامراض از صفحه هفتاد و تا صفحه هشتاد سه یک بندی بسیار قشنگ و محققانه کرد میگه تمام امراض به دو گونه است الامراض نافعه الامراض غیر نافعه شانه شین میاره سر شکستگی میاره سر کوفتگی میاره حالا تو امراض نافعه روایات تحقیق کرده از جمله این روایتی که دکتر لبی بیزون تو کتاب نشه این که مثلا زکام میشی و آبریزش بینی داری ها این پیشگیری میکنه از این که مبتلا بشی به بیماری عفونی جزام که بیماری خورست درسته اینجا یه مختصر تب کردی و آبریزش بینی اما از بیماری عفونی بدتر که مصری هست و آدم شین میشه خیلی قضروف بینی خورده میشه لرمه قضروفی لاله گوش خورده میشه این انگوش ها کم کم خورده میشه فنا بر خدا یا مثلا دومل ها که بر بدن در میاد درمان داره ها حالا مثلا اینکه که دومل میگیره یه بیماریه اما این زمینه میشه پیشگیری میکنه از بیماری بدتر نمیگذاره بدن دوچار بیماری پوستی ویتیلیگو به اصطلاح روایات ما بیماری برست به اصطلاح ایرانی یا بیماری پیسی بشه بفهم یا مثلا رمد یعنی ورم ملتحمه پردهی که روی کره چشم و پشت پلکا هست جنجوید درست ازیتت میکنه معامنا و چشمت ملتحد میشه اما این بیماری رمد. رمد این پیشگیری میکنه از کوری مطلق یعنی مبتلا به کوری دائم نمیشه. حالا رحمد هم باید درمان کنیم. میخوام بگم خود این بیماری نافع است. باعث میشه که کوری دائم نشه. تو بحث صرفه، صرفه یک اکسل عمله. خودش یک بیماری نیست. اما این صرفه که یک اکسل عمله نمیگذاره شما دوچار فلج اندامی یا فلج بخشی از بدن بشین. که در آخر زمان شپ فلجی ها و فلجی ها و لمسی ها زیاد می شود به خاطر بعضی کارا حالا هر سر جاش شد توضیح می دن. حالا این کتاب بزرگوار رو هم ار روح سه شما یه مقداری توضیح بدم آخر صفحه هفت و هش الامراف النافعه یعنی امراض المفیده چارتش شما و غیر النافعه <تصفيق> و مما تتفرد به نظریت الاسلامیه هو وجود امراض نافعت للبدن لا تجوز معالجتها بل هي علاج في الواقع لامراض اكثر خطورتا و اکثر اهمیتا میگه از نظریه های ناب اسلام بلائی که منحسر بفرده تو شاخه مختلف علوم جدید و قدیم نیست او چیه وجود امراضی که به نفع بدنه زیرا این بیماری ها در اصل درمان و یا پیشگیری از بیماری های خطرناکتر و مهمتر میکنه اکثر و خطوره یعنی خطرناکتر اکثر و اهمیه یعنی مهمتر بعد میاد جلو المراض الاول بیماری مفید اول از زکام که سرمخوردگی همراه با آبریزش بینیه لذا با دارو مانه آبریزش بینی نشین بزن یه مقداری آبریزش بینی داشته باشین آخر سر حالا می این یک واکسن طبیعی ضد جوزامه نظیر چی عموجون نظیر پنی طبیعی که شلغمه سلجم این اینم یک داروی طبیعی ضد جوزامه دستون تو داروهای طبیعی بودا ما من احد الا و بهی عرق من الجزام فا اذا اصابه از قمعه قلعه قم میکنه از ریشه جزام را از بین میبره در همه افراد انسانی اصل جزام و عرق جزام در بدنشون هست ولی گایی از حالت کمان خارج میشه از حالت نهفتگی خارج میشه جنبشی میشه و به فرد و اجتماع باستیب میزنه چون بیماری افونیه واگیره خب یک مثالی هم زنم مؤمنات تو بحث روانشناسی صحبت قبلا خب میتونید کتابهایی رو برای تحقیق مطالعه کنیم مثلا روانشناسی جنتیک تحول روانی از کودکی تا پیری دکتر محمود منصور این ها بر کتاب ها یا مثلا کتاب اصول بیماری های ارسی چندین جلد در جلد یک اصول توارث انسان تعلیف دکتر محمد علی مولوی یا کتاب مشاوره جنتیک در بیماری های ارسی تعلیف آقایان دکتر محمد علی مولوی استاد دانشگاه تهران دکتر هوشنگ خاروری دانشیار دانشگاه تهران دکتر لطف الله روزبهانی کارشناس جنتیک این رو مؤمن یکم نگاه کنید چقدر بحث های دقیقی تروایات شیعه است تو بحث ارق که هم تو رگ های خونی اومده هم تو بحث علیاف بافت مای چی اومده از همه بیشتر در رگ های خونی اومده به نوع شریانی یا وریدی یا لنفاری حالا تو بحث ما مؤمن از همه بیشتر ارق های جنتیکی و وراثت و اینها مطرح مطره مثلا از 31 هزار ژن انسانی گفتم در بدن همه این ژن مربوط به جزام هست در بعضی وقتها این چی میشه فعال میشه اونم هم به خاطر اینکه خود شخص دست پا چلوپتی بعضی مسائل بهداشت فردی اجتماعی رعایت نمیکنه از زکام و فضولون سر حالا اگر کسی بخواد مثلا آشفتگی معدش از بین بره بیش از بین بره همچنین تبر باشه نیجارو که روایات میگه قصد جوشانده برگ نیجارو قاطع قی و آشفتگی معدس و جوشانده ریشه آن تبر این هم واقع مثلا اگر کسی تب ناشی از اسهال خونی یا بیماری حسبه داره و تب های زکام رو میخواد فرو نشانه باز جوشانده یا دم کرده برگ قصر یعنی برگ نیجارو میتونید برای تحقیق به کتاب اسرار گیاهان داروی احمد حاجی شریف معروف به عطار اسفانی صفحات 578 و صفحه 1089 مراجعه کنید مثلا عرق زنیان که روایات شیه داریم هاون نانخواه اینها برای رفع ناراحتی گلو و سرفه مفیده و حتی بعضی از دکتران مثل دکتر ماشاءالله خوشی متخصص کودکان گوید برای رفع تب هم مفیده گرچه بشر فعلی از داروهای شیمیایی مثل استامینوفن و مانند او برای رفع تب استفاده میکنه ولی ما طب روایتی که در دسترس داریم که اگر بلایی یا بیماری فرد یا افراد مبتلا شدن خدا دارو از طریق داروخانه طبیعت در اختیار اونها گذاشته بشر باید تحقیق و پژوهش کنه و از داروخانه طبیعت دارو طبیعی رو استخراج کنه و به کار بگیره خب باز مطالبی دیگه اینجا توضیح داریم مثلا زکام حواشی می کنم مثلا زکام تقویت سیستم دفاعی بدن میکنه تو بحث یسپاچن یا کنترل مرکزی زیرا وجود هر پادزهری در خون پادتنی در خون تولید میکنه که استمرار سلامتی فرد رو به دنبال دارد به اراده خداوند متعال این زکام یک واکسن طبیعیه که داروی هوشمند و هدفمنده فقط داروهای هوشمند و مولکولین داروهای سلولی و مولکولی بحث دراکتیویلی ها در قسمت دانش تکنولوژی فقط نیست تو داروخانه طبیعت هم داروهای هوشمند و هدفمند هست لذا جزو امراض نافع از جمله زکام چون قشنگ زوم میکنه کلیک میکنه روی ارق جزام که ارق جزام از حالت پتانسیال و نهفتگی آزاد نشه به صورت جنبشی در نیاد و به فرد و مجموعه ضربه نزنه و از اطلاق روایات دیگر در باب وصل و پیاز به دست میآید که می توان از باب واکسن انتخابی به نوع کاتالیزور مجاورتی مصرف پیاز را تجویز کرد زیرا آبریزش بینی را زیاد کرده و خلط آور است و از برای تست سل ریوی مفید است اگر پیش متخصص ریه یا فوق تخصص ریه کودکان بریم احتمال سل بده میگه فردا بیا تست سل بده خب باید خلط اضافی در محیط فضای گلو و حلق در بیمار ایجاد کنیم حالا میگی شب یک کله پیاز بخور یا یکی دو حبه سیر بخور بحث بسال بحث ثام خلطش زیاد میشه فردا که میاد تست خلط بده راحت خلطش میاد حالا بعد این متخصص آزمایش میکنه اگر با سیل سل از پنج تا بیشتر بود حالا داروشیمیایی براش تجویز میکنه دیدی از دارو خونه طبیعت استفاده میکنی برای ایجاد خلط اضافی حتی این پیاز و سیر باعث باز شدن سینوس های پیشانی میشود و سبب التیام درد سینوس های فوقانی میشه اگر سینوزیتش التحابیه نظیر نوشیدن چای تازدن کمرنگ بدون اسانس و استقام که بخوره چند فایده داره یک فائده چیه مسکن دردهای سینوسهای التحابیه دیدی همش دارم از طبیعت استفاده می و بیماری های مختلف که حاشیه زدن مثلا اون قسم دوم یادنه گفتیم اگر بعضی چیزا نباشه سبب میشه که شخص سریع برست بگیره پیسی بگیره اما اگر دمل گرف این بیماری دومل یا دمامیل مانع میشه پیشگیری میکنه از اینکه شخص دوچار برس یا بیماری پیسی یا بیتیلی گوه اینه گفتیم خب؟ حالا اینجا حاشیه زدن در روایات شیعه سببهای متعددی برای پیسی بیان شده یک کسانی که از آبی که به نور مستقیم خورشید داغ شده گرم شده وضوع بگیرن یا قاسل یا از این آب داغ به توسط نور مستقیم خورشید بنوشن بخورند اینا مبتلا به بیماری پیسی میشن دوم اگر کسی در حال جنابت خوردن و آشامیدن داشته باشه باز یکی از علل ایجاد بیماری برسه سوم کسی که غذا خورده سیره حالا یه مهمونی میشه یا رفیقش دعوت میکنه باز دوباره میره یکی دو تا پارس دیگه میخوره یعنی شبع رو شبع سیری رو سیری قضا میخوره چند بیماری میاره علایه بر کنزهنی و خبلان یکی دیگه از بیماری چیه؟ ایجاد پیسی میکنه بیماری برست حالا علل مختلف داره حالا خواستم بگم این دومل یک دارویه طبیعی به نوع امراض نافعه که پیشگیری میکنه از بیماری برست با اینکه خودش یک بیماریه پیشگیری میکنه از بیماری بدتر یکی دیگه از چیزهایی که ثابت شده به تجربه در علم تجربی و طب مکمل کسانی که با شکم گرسنه ترشیجات زیاد بخورن مخصوصا سرکه یا ترشیجات بندری و لیته با شکم گرسنه زیاد بخورن اونها هم دچار پیسی میشن پس این اشتباهی که سر های بعضیا ها هست در اول افطار که میان قبل اینکه غذا برسه شروع میکنه قاشق کشی میکنه ترشی میخوره خودشونو مبتلا میکنن به بیماری پی سی. مطلب 50 ببخشید لفظام بد میشه ببخشید زن و شوهرایی که ازدواج قانونی و شرعی کردن اگر مجامعت کنن سلام علیک خصوصی کنن در ایام عادت ماهیانه چندین بیماری میاره برای نسلشون هم داره، حرام هم هست حالا یکی از بیماری هایی که میاره پیسیه بیماریه برسه در حال حیز جماع کردن یورس البرس مطلب که از نظر علم جدید فعلا ناشناخته است ولی تو بعضی روایاتمون اومده کسانی که روز چهارشنبه نوره نور کشیدن فاکتن واجبی تو کتاب خصال اومده و بعضی از علمای صالحمون که مرحوم شدن همچون حجت الاسلام حجت الاسلام محقق دانشمن هم بیان کرده حالا در این زمینه ها به کتاب های مثل کتب آسیب شناسی خونی و طب بالینی هم میتونید مراجعه کنید. مثلا تو بحث بیماری های خون دکتر فریدون احمدی که بخشی از کتاب اصول طب داخلی هاریسون قسمت بیماری های خونی رو ترجمه و توضیح کاملی داده مراجعه کنید. یا آسیب شناسی بیماری ها دو جلده چاپه طبعه چهر اونا رو هم کنیم تو بحث سرفه که گفتم یک عکسال عمل فیزیکیه برای دفع مواد زائد و یا یک نشانه برای تشخیص یک نوع بیماری مانند, مانند سل که سرفه های ممتد و پشت سر همه با فاصله کوتاه. و گاهی با خلط خونی و ربطی به ژنتیک ندارد گرچه از بعضی روایات استفاده ژنتیکی می شود که مربوط است به سرفه های خاص یعنی صرفه توعم با خلط که چرک و عفونت لوزه ها و یاریه ها را به بیرون از دهان بریزد باز می توانی از داروی طبیعی استفاده کنی مثلا شیر تازه گاو کمچر با اصل طبیعی مثلا اصل استخدوست هم پیشگیری هم درمان در سل ریوی مثلا سینه پهلو کرده یا سیاه سرفه دارد میتونی از داروی طبیعی مثلا اللفتو از شلجم سلجم تروایاتشیه لفت سلجم این دو تا تروایات حالا اینجا شما این شلغم رو از وسط دو نصفش میکنید دو پله وسطش رو گود میکنید پودر شاخ نباد و یا اگر شخص دیابتی هست اصل طبیعی این گودی که کرده وسط دو تا شلغم داخل این میریزه اصل طبیعی یا پودر شاخه نباد دو سه ساعت بذاره پشت پنجره تو هوای سردر پشت پنجره تا صبح آب میده این آباش ورداره قرقره کنه قورت بده قوی ترین دارو در درمان سینه تحلو و سیاسافه به قربون پیغمبر رحمت برم قربون امام رضا رعوف برم یک کلمه حرف حساب میگه بلایی بیماری نازل نشده مگر اینکه داروی طبیعی در دارو خونه طبیعت خدا قرار داده داروی طبیعی رو کشف کن پیداش کن و حسن استفاده کن باید دانست صرفه خشک نشانه سرم و خوردگی و تورم لوزه هاست مخصوصا بچه هایی که نارنگی بخورن و شکلات بخورن تورم لوزه که میاره تورم لوزه شنم بیشتر میشه دیگه آب دهش هم نمیتونه قرط بده شربت‌های شیمیایی، شیمی اسپکترانت یا داروهای ضد احتقان صورتی رنگ اونا هم دیگه به مفت نمیه چون بچه خوب نمیشه باید بدخوری بچه رو اصلاح کنیم یعنی بچه کافئین زیاد چای پررنگ چای مونده چای با اوسانس قهوه شکلات، شکولات ککاونسکافم و همچنین میوه نارنگی نخوره بعد باید دارو تجویز کنی نه اینکه بعد خوری کنه دارو تجویز کنی این سیکل معیوب تکرار میشه دارو اثر مثبت خودش رو نمیگذاره بهترین نرم کننده طبیعی مثلا کسی بیماری خروسک دارد سرماخوردگی شدید دارد صداش تغییر میکنه حالا برای اینکه رو صاف کنی صداشو خوب کنی بهترین داروی طبیعی آب نخوده جوشانده آب نخود قرغره کنید یا مثلا فرض کنید این آب نخود بهتر از نشاسته محلوله که بعضیا میخورن اگر کسی تورم لوزه ها داره چه لوزه سوم چه لوزه های جانبی و همچنین آنژین گلو داره و یا عفونت افونت های جانبی داره و یا کیست و یا تورم پشت زبانک داره و یا افتادگی لحات و دو گوش حلق داره در همه این موارد بهترین داروی طبیعی چیه؟ استفاده از مخمرها بهترین مخمر خاص چیه؟ سرکه طبیعی سیب یا نبود سرکه طبیعی انگور اسکری قرقره کنه بریزه بیرون. بریز بیرون تمام این تورم ها میخواه. خب شد مومن ها چی گفتن؟ افونت های لوزا و پشت زبانت و پشت حرب همه می کشه بیرون می بیرون لازم نیست پنیسلین تزریق کنه که تزدیق کپی رایت کل کورکورانه از قرب و شرق نکن نخواهد در کن در بیمار قابل عرض دکترهای محترم در داخل قارج کشور. هی نگو یگان داروش فقط پنیسلینه شما می توانی ابتدای گلو لوزه پشت زبانک دو گوش هم همه رو بکشی بیرون با داروی طبی بله اگر کسی این کار رو نکنه مستمعون روزی دو سه بار وقتی که مبتلاست بله اشتباه واضحه کسی بیاد افونت گلوشو قورت بده آنجین گلو باشه خواهشو درمان نکنه اشتباه واضحه چون که از جدار معده و از جدار انتهایی روده کوچک جذب دستگاه گردش خون میشه و مبتلا به روماتیسم قلبی میشه پس باید آنژین گلو و عفونت لوزه رو درمان کرد حرف اینه که میتونی استفاده کنی از داروخونه که خدا خلق کرده بهترین دارو هم گفتم تا دوچار روماتیسم قلبی نشی که فلجی به همراه خود داره به نوع انقباات شدید عاعضلات بدن. بله سرفه در کودکان یا میان سالان یا جوانان و نوجوانان یا کون سالان درست یک عکسال عمله، یک رفلکسه بله همیشه علامت سرفه بیماری نیست یک علامت میتونه علامت بیماری باشه میتونه علامت بیماری نباشه. حال اگر سرفه خشک فقط دارد هیچ بیماری خاص ندارد یک دونه خورمالوی رسیده وسط روز یا عصرونه می فصلی که نبود کاسبرگ یا دومبرگشو به جشون مومن یه استقام قرق قرق کن صرفایی که خوب میشه اگر کسی صرفایی خشک مزمن دارد چندین ساله میتونه از شکر تیقال که از گیاه دوم است، به اضافه گل زوفا به اضافه عناب استفاده کنه سه مسقال، چهار مسقال، پنج سرفه های مزمن خوب میشه. به سه روز. حتی فوق تخصص های مثلا فوق تخصص ریه مثل دکتر امینه احتشامی افشار، این هم فرماشات خوبی داره. سرفه یک علامت است نه بیماری و برای درمان آن بایستی علت زمینه‌ای مشخص شده پیدا کرد تا درمان به موقع و صحیح باشد دو نوع سرفه داریم یکی صرفه خلتدار دوم صرفه غیر خلتدار. غیر خلطدار دار گایی در اثر سهم گایی در اثر مصرف دخانیات علل شایع صرفه کردن پنج تا یک بیماریهای حاد مثلا سرماخوردگی شدید مثلا بیماری سل مثلا بیماری ریوی برونشیت حاد دوم بیماریهای راههای هوایی مثلا آسم یا تنگی نفس به نوع آسم خفیف یا متوسط یا شدید سوم تومورهای ریه چهارم داروهایی که باعث و بانی تنگی نفس یا ایجاد صرفهای مکرر یا به صورت متناوب و مقتعی میشه پنجم فیبراز ریه چروکیدگی ریه و به طرف خشکی رفتن اینو از علل شایم صرفهایی که بیش از سه هفته طول بکشه، شخص باید پیش متخصص ریه یا فوق تخصص ریه کودکان مراجعه کنه سرفه در نوزادان رو نباید از بین ببری بذار سرفهش ادامه پیدا کنه بعد پیش یک فوق تخصص بیماری های نوزادان ببر تصالب فهم بودین؟ مخصوصا بیماری های افونیه نوزادان پیش فوق تخصص نوزاد ببر اگر کسی صرفه در نوزادان رو از بین ببره ایجاد خطره بیشتر میکنه مخصوصا در برونشیت خفیف اگر ترشوات اضافی ریه خارج شود صرفه درمان میشه حالا این صلاح بدونه مثلا ساکشن میکنه صلاح ندونه با چیزایی دیگه میشه درمان کرد مثلا نکه قاشق چای خوری پودره گل استخد دوست در یک قاشق مرباخوری آب جوشیده ولرم هم بزنیم این یواش یواش به نوزاد بده مایات اضافی ریش خوش میشه بدون اینکه ساکشن سکشن کنیم این هم قابل ارز فوق تخصص های ریه بعضی افراد همچون بزرگواران حضرت آقای دکتر مسعودی خانم دکتر ترقی آقای دکتر رضا ممیز که سازندگان واکسن برونشیت مزمن در ایران می باشن. اینا هم کار خوبی انجام دادن که واکسن ساختم اگر هر کسی دوست دارد هیچگاه تب نکنه عفونت داخلی هم نکنه و سرفه ناشی از تب شدید و عفونت داخلی نداشته باشه خدا تو دارو خونه طبیعت قرار دادم و معصومین بیان کردن عسل رقیق شده صبحگاهی بخورم و آب سیب شامگاهی اینم قابل عرضه همه بزرگواران در داخل قاره کشور که تو بحث واکسن سازی هستن واکسن های طبیعی خدا در دل طبیعت قرار دادم ان العسل شفاء من کل سم حتی اگر بیماریتم به نوع افونی باشد با واکسن طبیعیم اصل طبیعی درمان می شود زده باکتری زده ویروس زده آمیب زده میک... میکروب وقتی رقیقم بشه به توسط شیر تازه گاب کمچرب یا آب یا آب جوش ولن خاصیت میکروب کشیش دو برابر می صادقی خارجیان ها پرفسور فونفریش مهندس های صنایه مهندس صالح نجات تو بحث زندگی زنبور مال مال فون فونفریش ترجمه مهندس عطا شهرستانی یا مهندس های داخلی خودم مهندس صالح نجات تو بحث زنبور درمانی و عسل درمانی و افراد بزرگوار دیگه مثلا بعضی افراد هم چیزهای دیگه ای فرمودن بس دیگه حالا بحث رمدم هم همینه دارم روایت دوم این همه توضیح میدم ها حواشی مثلا این رمد که بیماری مفید سوم بود هم امراض نافعه و رمه ملتحمه میتونید دارت المعارف پزشکی خانواده ماله بریتانیای انگلیسه صفحه 253 ورم ملح... ملتهم یا کنجونک کنجون... به التهاب لایه شفاف داخل پلک ها و کناره خارجی قرنی است که شایعترین بیماری چشمه ورم دو پلک چشم باقی مختصر کنار چشم البته گاهی پف دور چشم به خاطر کمکاری قده تیراید، اینا باز حواشیمه هم برای این کتاب هم برای اون کتاب انگلیسیا که گفتم که ربطی به بیماری رمد نداره این پف دور چشم به خاطر کمکاری تیراید، ربطی به بیماری رمد نداره باید کمکاری قده رو درست کنه یعنی گواتر یعنی گواتره ساده چه درست کنه که گواتر غیر سمیه به خاطر اینکه کم کمبود ید در بدن داره پزشکی جدید چی تجویز میکنه؟ قرص یا کپسول تیروکسین. تیراکسین تجویز میکنه شما میتونید از دارخونه طبیعی استفاده کنید و قرص شیمیای تیراکسین هم نخورید میشین آن اوله صبح نان ذرت آرد ذرت یه نون درست کن صبح نان ذرت وسط روز اصرونه یکی دو مش ذرت بوداده شب هرچه هر چه شام نوش جان میکنی گوارایی وجوده ولی به عنوان دسر یا غذای کمکی یه بشقاب سوپ ذرت بخور هیچ ارازی جانبی نداریم یود بدنت هم تأمین میشه اگر به استحباب اسلامی هم بخوایی عمل کنی که اسلامی علمیه اول و آخر قضات نمک یوددار بخور که قاشق چای خوری یک گرم یک گرم خب دو بعدی که داری نهار و شام میخوری میشه کلان چهار گرم نمک یوددار اول و آخر هر قضا یک گرم یک گرم یک گرم یک گرم خب معنیش مومن هم لازم نیست آدم زود بلدع تو کنه با عربا. قرص شیمیایی تیروکسین رو که قرقاشق تو طب داخلیشون آوردن مثلا ما هم و ادعا تو را نه خدای متعال مؤمنان بیان فرمودن و خلق کرده داروخانه طبیعت رو امام رضا رءوف علیه السلام یکی دیگه از مشکلات آمدهم که بحث بیماری های مردان و زنان که عقیمی شایع شده داخل و خارج کشور چون نیازه به روز داخل و خارج کشور ان شاء الله میدم اللهم صل على محمد